اعوذ بالله من الشیطان الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و الله على سيدنا رسول الله و آله طیبین و طادرین المعصومین و معهد الدائمت و علا عدائه عجمعین اللهم و فرن و جمیع المشهرینی و الحمد رحمتی و الحمد رحمتی و الحمد رحمه رحمی همچه شکی از این آن پرنده دیوز ما گفت این روایت عبد الرحمن الرحیم از طریق بدنیشه اشتباه شده اشتباهی که مکرر شد از طریق یونس نذرغانه هیچ درسی حتمی رو دومیش اشتباه شد اما این که این روایت اون رو از دیگه دقیقاً عین نبوی این هم بله دقیقاً عین نبوی است حالا چون روز برای تبیین بحث و نهایت بحث از مصادر دیگه مرحوم استاد فرمانده بودن استاد کلمات شکل رو جمع کرده بودن ما چون بسونم این بحث میتعیل میکنیم باید جهات مکرده بیم هم متن کلمات شکل رو تقریبا نگه جایی که یک نداشت رو بشه هم و هم متن کلمات استاد رو خواهی یا این یاد روی این دو کتاب به اصطلاق برای مراجعه آمین سهولت مراجعه ببیند حدیثشون به ا از مردم مرموم، بعد از این کلمات مرموم استاد که یاد شده شده میگیرد بکنیم مرموم شیخ بقیه از کلام که امور علا اول مثل همون استاد متعرضه موضوع غیبت شدن بحث بعدیشون هم ایشون بعد از بحث اول که این شاید شده از رو دیگه متعرض بشین از ساله کیفیه خیلی کفار غیبه ایشون از اسم و محس این از که در عبده از آمده و درستن از ارتاب یکتاب و به تیارا مصدرش غیبتن اسم مصدر به معنی اون کلامی که گفته میشه او مصدران لقابه فکر نمی کنم مصدر باشه اینشون را یه عبارتی رو شاد جایی دیدن که سبول پرمونه مصدر لقابه هست اونی که مصدر لقابه هست, هست به فکره قیبت نهست مصور بده در کتاب مطلبی که از ابن عراوی نفت شده بود وزقیبت و, و فعی اتوان اصطلاحا مثلا نمیم مصور حیات حسان مصور نفت حسان مثل جلس و جلس و ترحبی بیشون گرفته بود اما مطلب ابن عراوی ثابته بود یه مرحوم شیخ مناقشه ای در لغت نکردن شون اما نظرشون به کلمات لغتی جنبه تعبوز داره. فتن نسباح ارتابه و ادازه به ما یک رفو و عیوب به این به ما یک از ما کلمات رو دیگران رو لغتی رو و اینها رو تحلیل نمی کنن. ما مطمئنی بداخل هم محفظ بشردن ذهنیت ما این و آیون باید این تحلیل رو خود از طریق داشته باشن که بهتونن کلمات حتی اینهایی که به اسطلاح لغمی هم تحلیل بکنن و ذهنیت اونها رو باز مطارد بقید محبوسی مطالبی که این گفته بشین اقتابه و ادازه کراه اونما اقتباز کرده کتابه نسبه هرمونی شرقه اون مجموعه رافعیه یافعیه شرقه اونه اما همچنکه در مقدمه گفته در حد شرخ مصطلحات فقیه صرف نیست بعدم بعدی مثاله لغوی رو اضافه کرده الان هستن کتابایی مثال مصطلحات فلسفی مصطلحات لغت فقیه شرخ مصطلحات فقیه نیست حسابه هم نشکیه این کتاب لغت نیست نه شرخ مشکلاتی که کتاب راخی آمد درسته چه اونه هست هم در این حال هم خودشونگی که فرسول لغتی هم بر جا که ذو الی ان ایشون اجازه قرارو ما یک رحو متکثر و, و تفسیری که پیغمبر نقل شده که اثر این تفسیری که شده نقل شده در کتب احادیث سنت صحیح وجود داره رسید ما یک رحو که خداوند انشالله که چه این کلمات رو تعبدن میگیره ما اون چه هر ما این کلمات رو تعبد نمیگیریم رد میکنیم با سوال با رد میکنید و سریع میکنه به متون لغت عرب و به واقع لغت عرب نزدی کردشید مثل کلماتی این ها این صلاحیت نداره که ما رو گیر بکنیم ازازکه رو بکنیم یکره و, یک و منال ایوب و حق منال ایوب در روایت نیامده به ما یکره اون در اونجا داره منال ایوب که خودش اضافه کرده و حق کارم سور روایت هست رو در سندات هست که این مطلب حق باشه چون اگر هم نباشه بحتانه پس کلام مصبال در حیرت چیز خاصی نیست اون رواید پیغمبر رو در یک شرح کتاب فقهی یک اسطلاح فقهی عورده بیشتر میشه بخیه این تصدیر مصبال مونی یک نوع فقه اسطلاح این روز بشین موضوعات مستنبته با قیبت معامله موضوعات مستنبته کرده شد یعنی موضوع و از خود سود ربایا اثبات کرده این راه لغث نیست این راه شیطون رفته راه لغت نیست از کنید سر وشمیه که این درس در خود قران احتبار شده چون در بواسطه بواسطه قران ما داره مذهب عرفی باشه ظاهرشون شیطونی برای برخی در لسان دین اصل میشه وقتی اگر پیغمبر اکرم مذهبی فراهم دهن باشند احتمالاً توصعی داده باشند چون من اخیراً چرا یکی از معانی سنت رسول الله اینه چون یه این که اونجا امور واقعی بوده یه مثل که خدا جعل کرد یا در انبیار سابقی مثلا استنبار شرحیت مردسه یه اموری هم خود پیغمبر جعل میکرد که سنت رسیم و کرارا از کردیم سنن پیغمبر به طور کلی در اونجاهایی که امر وجودی واجبه مثلا نماز ها اضافه کردن چیزها نیست که جنبه تحسین و تقدیره برنامه رو دارن مثلا نماز ماذور کاری اینو تو نماز صر رکوع و برنامه رو آوردن اضافه کردن رو از شایسته شد اما در جایی که محرمه توضیحاتش از کردن در محرمات شما که اینقدر بی از دو چیز برنامه گیرشون بی تقدیر جدیدی من توضیح میدم یک معیار مصادیق مبهم مثلا اینا مو هم دیبته همین که نامعرش میشینم دیبته ولو ابن باشه یک بیان مصادیق مبهم دو احتمالا توسعه بدن باز دو حالت مثلا فرض شراب و خمر در اصطلاح عربی شراب و انگوری بود پیغامدار خوب دو ما اکثر كثيرو برای لوا حرام توسعه داده توسعه و این به اصلاح مصلاح رو یا پس اما اگر این یک, یک یک این که توسعه بدن مصلاح رو جهب قرار دادن نسیه رویات توسعه دادن دو بعضی از موضوعاتی که همه اون رو قرار بدن سه شاهه مقدسی که از سالهایی که پشمبر در سنانشون کردن خوب دقیق بکنی گاه یوها دیگه مرکبی که حرام بوده خاطر تحکیل بر اون مقدماتشان حرام کرده و رضا این به صوره کلی نیست این مقدار مقدمات هم پرسوی با مثال خبر اینقدر قرد قرمات شدید بوده که مشهور، مشبور کاشنه کاشنه که بیشتر بیشتر با با انگول بیشتر با بیشتر با با مقدمات قدمه هست قدمه انگول رو انسان بزن تا شرط شد شد شو مصادر باشه سه سال در ممکنه فکر میکنم قبل سال انگور روزه خیلی زود زود انگور روزه سال برده خب اونی شما میگه قارس ها همه اینقدر مبغوضی از داره و انگور بخره، انگور بپروشه انگور فشار بده که بعد بخواد از آب روزه مثلا همجر روزه کنه آسره حتی اصلا حامل ها در بباره 3 این هم جزه سنن فیغمبر پس سنن فیغمبر در محرمات یکی توسعیه اون حرامه دوم که افراد هم، که ما نمیدونیم آیا اون هست یا نه. اصلا فرسان اینجا ممکن است فیرانبر توسعه داده باشن قیبت رو به ذکر که افراد ما یکی و لو سمن راقا حق کن یعنی حق درون هم هست همین که نراحب بشه این توسعه داده باشن دوم که این مصداق مشکوکه از در اوفی هستن فیرانبر بیان میکنن شون ارز کرده این که فرمایی با اخلاق. احتمال داره یکی از نحوال تحقیم رو همین باشه که مثلا قصد که حکم دروغ دو رو قبیه که میدونه در این موارد دلوقت عقل گیر میکنه که قبیه هستن شاید بیا تحقیم میکنه یعنی میگه اینجا قبیه هستن اینجا حرام هستنه یک تحقیم مکارم اخلاق یا اعالی اخلاق در برد از روالا این است هسته سه با میشه این هم اشاره میادوی کن و این اگر مقدمات خیلی ولید بود تبقیه قاعده نیست مقدمات قریبه به قاعده است. اما مقدمات ولیده اصلا نستجی رو بیده که چیزی از الان مشغول کار بشه که بعد از 3 سال باید با کوی زنا بکن نستجی رو بیده این دلیل نداریم که این مقدمه حرامه. حالا در هم دلیل داریم قاعده 3 سال توی بکشه مقدر ماسته ویده رو شیم که باید ثابت بشه مقدر ماسته ویده قریبه نه مقدر ماسته ویده فرمونه بایده پر از یه توضیحاتی را جبیلی محلق گذرش پس اون چی که لکتاب مثل با آمده بیشتر تفسیر سنت پیغنبره نه تفسیر لغوی قابه ای این یه و هن القاموس قابهو ای آبهو و لکرهو به ما فهم نسو کرده تا این ازدکه ایشون مرموم شیخ قامل نقل نکرده این حاشیان نقل نکرده این عبارتی که در, در قامس اینطوره طوره و آبه و قابه و آبه و ذکر او و ممافی من از سوق کرد یعنی قابه و اقتابه رو بی این مهمه گرفته محید نسخه نسخهی که من دارم از این تا طول عروس به قامس من را جیب کنم. اون تازو الاروز هم شهر کاموس بسید رو خوبی تازو الاروز در تازو عروس اون مطلبی رو که ما در لسان الاروز ابن عربی نفتیم زده اینجا عورده این چاکی شده نیم باقی مال کاموسه ولی بسید رو پیلتون نه تاکه اونو قبیه قبیه هستن اون به صحبتنه این طور در نسخه تازو عروس. علایه حاله رخ تازو الاروز چون مرد منلاب نیست قبل از این که این عباسه نرگو کنه قاموس بگه او ای آبهو میگه ورگو میگه انبعزم انهو ما او ای آبهو این تازگاره سه این در این بوده چون تازگاره ما میگیم که ما شک داره ما گفتیم واضح نیست لگه قاموس کتاب لغوی واضح نیست قابهو هرم استعمال شایع داشته باشه سورت متعدی اینش یکه توضیح در کلمات آبه خوبی شش تکرار ش الا در کتاب قاموس، داره آب و هو کهگزاب و این روشانی است که تابو روشانی آب هو ای آب و هو و به نظرم نسو می‌دهد. می‌بینم اون دنباله تلاممله نعره روشش اشتباه شکسته درک تابو قاموس. درمیشتباه شکسته. به ما فیح نسو اون حسندند و دیهند انسان روشش با شکست. الا در کتاب درک قاموس آبه رو که سلاسی مجرده با اختبابی سلاسی مزید مزیدون یکی گرفته یک کون توضیح ما مفصل و گفتیم لازمش اینه که این معنایی بیوزد ذکر انسان دو ما فیرون این معنی لغتیش باشه و این فعل هم متعدی باشه هیچ کدوم اینها ثابت نیست چون خود ساله باموز مردم مندائیست و قطعه انشنیده و در کتب لغت روی هم برزنه. این رو رویه داره احتمالا شاید شنیده این استعمال رو دیده اما الان شواهده ما معیلش نیست به این توضیح گذشت که در کتاب نه عربی قابه داره جب قابه اون هم ثابت نشد نه قابه تنها نه قابه هون هیچ کدونش ثابت نشد پس عباس قاموس رو که مضمون در اینجا ورده برمان تهبود ما برفرض، برفرض، برفرده با شدت فرض قبول بکنیم ایشون در جایی دیده یا از عربی شنیده و که هیچ کدومش ثابت نیست عربیات با این اثبات نمیشه و انه نهایه نهایه کتاب نهایه نرسید کتابی سه شعر حضیثه. خواهی نخواهی متحصد میشه به روایات مثل مجموع درهن خود ما مثل مجموع درهن بید نیگاه چاپ چم قدر از برو داره متحصد پان اون مرموم معذف هم خیلی وارد نید خود رحمه خیلی عرضش ایدی نداره مجموع بحیه نیکن تا مراسی بایدون زهن سمو شبر نگم الان نهایی ناسی مرد مولاییست نصافا نهایی به خیلی حکم نداشته حقا نوقات خیلی اتفاق قابل استفاده ایست خیلی مرد مولاییست و البته از متون ای که از قرن سوم ما قدیبا حدیث شعور شده از ما گرفته اصلا ابو عبید گرفت به خاسمه سلام که اتحاب شده کتاب قریبال حدیثش اون العاده مرد فوق الادهیس هم در حدیث و هم در لغت و هم در تحلیل و خیلی مرد فوق در کتاب قریبال حدیثه خاسمه سلام و ابو عبید برا؟ نیست نه وارد نیست و استاد کار نیست نه در لغتش واضه نه در اونجه هستی برای هر هر یک فهم خودش داره نه اون ترسل قدیشون این مدافر که این چاپیکت ها هم خرابانه دوتا موشه بیگر نسخه چاپیش ها اون نسخه قدیمی سنگی شده که مستقی تر باشه برای این نهایی این یوز کرده انسان, کرده انسان نظرش که یه غیبتی برونی این یوز کر آورده ذکر رو ترخواد نظرش اینه که غ چون ارز کردن مشکلی بوده در برد این کتبی که بعد در لغت آمده این کتبی یه نقدار متعصده در فکری خودشون هم هست این خوب دفت بکنید در برد دکن که افاق انسان نیست که اینا شیئی دقت این یعنی تصور نکنید که خیاض مثلا اینا و عرض کردن خود لحظه آوردن اعتباطن و بیهوده بوده کاملا حساب شده بوده پی غ این اول قیوه رو کنیم رو به رو کنیم این بردهی به سوء ممایکون و فی این در ذکر قیوه ایشون دقیق می‌دونه که شخص قاعد باشه بیوزم بخش آقای خویی رو کنیم شیخ هم داره اما که از تون بیوز خونیم بیوزم رو کنیم این معلوم میشه که قاعد بودن در شرکه و این درست هم هست از که این درست هم همینه حاضر. ولو که هرو یک اندناسور حاضر بگن قیوبت صدش مشكله انصافا با شواهد لغوی سره مشکل مشكله لازم اونقدر ایثار وامن باشیم چه دیگه بحثی هست این سه تا تصفیل که مرحوم شیخ انصاری در این کتاب اردوجی برای جناب علو اصلا که شیخ حدا ساباح نص با هر سه متونه کتاب لغت کرده از سر مطبا به البته از حدیث در سرن که ایش از سرن دو قاموس لغتیه لیکن قاموس هم میگه اشتباه کرد به نظر ما چون ما کسی اینطور مثال همه قاموس خوشی کامون بشه چون ما شواهی در لغت کرده. رضا رضا هر که تاجر عروس خوا میگه در رو بیان بده قال قابهه و را شما برنامه آورده خیلی ظرافت به کار برده خاطر خب این حق ثابت نیستن می میش تا جلالت زبیدی هم میشد شهادت بده زبیدی و حقم با ایشونه ثابت صادق نیستین و ظاهر کل و هر کردم که خب برها کتابای هست در لوح که آمده و از ما کمش آورده و با این مقدار کلمشون نقل کردم و با این مصادر و با این شری که من دادم اثبات یک معنی لغوی نمیشه کرد خلاص حالا دیگه خیلی خلاصونیم آقای مدرسان اگر ملاحظه اینشان توضیح بدید عرض کرده که شواهد و مؤید این معرفته که که اختیار یک مفهوم اصلی از اونجا بشه ایشون بعد توضیح میده توضیح و ثابت نشه که این معنا یعنی انسان، کلام راجع به قابل بگه این در ماده قابل باشه این ثابت نشد یعنی کلام قاموس ثابت نشد گفته قاموس ثابت دارم گفته شد. حتی هم شنیده یا جایی دیده این هم قبول داریم این معراوی هم گفته قبول داریم. ثابت نیست منجاز این از یک پسون نفر و توی یه دیل رفته توی کمایت دو این شنیده این کافی باشه برای لغت نهرگی یعنی تحقیق متفهم در زبان عربی. ما الان در زمانه عرضی قابهو نمیدیم آبهو رو میگیم قابهو رو نمیدیم برپرزن بوده مثل و اما تو مازی یه مازی در مثل اما تو مازی یه دقا که اما تو نیم دیگه این ها دروغ میگن اشتباه نشید نیم خواهم دگر این من اینه که با این مقدار لغت ثابت نمیشه فوق اص پس این معنای ریبت به ممنوع که انسان کلام و پشت سر این از هیت افتعال درآمده نه ماده قابل بعض دوستان دوختن که مباعسی وبی رو شما مصیم در ف باز مباث لغبی رو با اشتال شادی معنا ریشه ها رو ببینیم میخوا چرا لغت رو مییم ریش های لغت رو میتونید بفه و خود مساز رو روتون ارزیابی بکنه این مررا ما در بحث صحیح یعنی اینجور نیست ما دست در بحث در مورد مصفا و قاموس و یا بقول ایشون بعد نههای نصی قراری نه همشون حد معینی دارن شخصش معینه اینا کلاهاشون خوبه مهم بفهمین یعنی اینطور نیست میشین در این ها قرار بگیرین یه چوری این مقاله نوشتن و بعضی این مقاله درست به بعضیشان نادرست و ظاهرا کل الكل خصوصا اموس ای ان المراد ذهب روخی مقامل انتقاث محموم هایی که این کارمون قصد انتقاث هم شرط نیست در بیوید راست دهن بایشون با این مقام انتقاث هم که ایشون فرموندن رو ثابت نشد من هی دیگه تکرار نمیخوام بکنم هم از کارمین که آیا پیبر جزء مقامل قصدیه هست این ثابت نشد جزء همارین قصدیه باشه شما این گیرو در شخص در شخص بگیم شوخی از باقا من قرار دینادش میگفتن گفت خب شان مرد بجاره خب آنسان عیده که که گفت بعد ها بخواد قصد انتقاض با جنابه شد بس قصد انتقاض حنطافن منوانی خود شیخم قائل بین باشه ضد او که مقام انتقاض مقام انتقاض در وید دخیل نذاره وقتی یک مطلب خودش این سه و رضا ما گفتیم حق این هست اونی که خلاصش با مناخشات که با آرخوی داشتیم یک محروم عرفی یک اصطلاح شرعی شده و آرخوی از اول دردش تا آخر که اون اصطلاح شرعیش دیر داشت اون یه بود که زیدو که احاق مایت را بود هم دردیف ثابت نیست پس مفهوم عرفیش اینه که انسان پشت سر شخص مستور یک عید مصدور اون رو بهید مخواد مقام انتقاث بایشون نموشون این به نظر ما مفتوم و ارفیقی بوده نمیونه که آیه موارد کردن ای اون دومی به نظر ما از قدیل سنته اضافه فرمه ذکر فرقه ولی ازا در اینشو نقل نکردم در بعدی از کتب لغت داره که حلق ازتان انسان مصدور او به ما یه همو او به ما یه همو این به ما یه همو این حدی بلیتا ما نمعنی شهر از این راهباره شده نمعنی های توییم ما اصلا از این راه کلن باردشیم پختار من مزهر نیست ما کلن از این راهباردشیم که آیه مبارکه یک مفهوم قیبت به عرفی داره و روایت فیغمبر احتمالا اضافه کردن اصلا از این راه باردشیم سرشم قبول نمی کردن ما به ذهن رو میاد که اینجا سنن فیغمبر باشه شبیه حرمال از خرد اونی که مطارب بود در زمان جاهلیان و در خود مدینه در مدینه مهم سه این رو که مرابی ها که از بودن یکوژی ها بودن چون از اقتصادشون خوب بود ربا می دادن. در مکه از بزرگان مشکی بودن مثل ولید نبی مغیره این پیدر خادم ولید معروفه ولید و خود عباس اموی پیغمب و ربای این بیشتر به همین یا تجارت بود یا در در مثل طائف شون کار میکنن حالا این ربا ربای به اصطلاح خودشون ربای نصیئهشون گفتن مثلا ده هزار درهم میداد که بعد از دو سال 15 درهم بده این اسمش ربای نصیئه پیغمبران برای اثر ربای نقد رو خودشون اضافه کردن اون سنت پیغمبران مثلا شما 10 کیلو بریزیدین به دوازده کیلو کلمه نقض ما الان میگیم در راز را یدن بیاد یدن بیاد اینطور با هم بگیم معروف کنیم دست به دست نقضی یدن بیاد این روای پیغمبر ربای خود قرآن روای نصیه است. لذا رو روای بگن روای نقضی اصطلاح مراد مرا بشنم بشن گاییم بشن. بشنم ربل فرز, فرز این ربل فرز یعنی شما در فیل گرم ربل فرز رو پیغمبر قرار داد نه آیه مبارکه تقصد بکن مخبه بل فضل هم که پیغمبر قرارداد در مکی رو موضونه فقط چون معدود هم نیست مثلا اگر تخمه مثلا جوزه معدود باشه 15 تخمه به 20 تخمه گفتن اشتاد هم اینش الان در ترمازه مثل من ما رو دیگران هست که شما اگر مثلا سر هزارتان بیشتی بدین به سببیت هزارت من نقدی اگر نسیه باشه رو بای نسل. نسیه صده هزارتان برید به صده هزارتان هم برگه کلو نور بیشتر ایشون بکنه اشکال نداره صده و ها صده هزارتان, هزارتان. نقدن اشکال چی محدوده او اون روالی که نها آنها رسول الله در سنت رسول الله نقدن اون در مکی و موزونه مکی اشیایی هستن که رقبات و غلایی در حجم هست اعتبارشی توتون خواهدش من کلیش حرط دارم. ونجوری که رغوبت و غلایی و رغوبت و و منافع و و چیزایی که باعث میشه بر حجم شیل که شیل یا به در حجم این با شیل باشه مکیه اونش راست سنگینی اش باشه از طرف تغییرات درها چگافت چگافت و اینا رو سنگینیه مرا چگافت خاصی سنگینی اش باشه موزونه درخابی ما صح آه آه در طول سالش بچه‌ای همیشه مکی بوده هیچ وقت موزون ندیده مدلش شاهد نذره اینو یعنی دو واقعه 10 اجل استراغ. وزن کو به اصلا فرانکیل هست. به این چیه؟ دیگه ما در نمیریم که آب موزون باشه. آب طبیعتش مکیه در طول تاریخ این یا خرفان ساعتی بود یا الان مثل مکهبه. یا مثل یا لیتر میتی که الان هست. مثلا این اشیاء البته شبیه خوب بوده، برای موضوع بوده، برای حجم حساب می‌کردن. حالا چرا بعضی و حتی بعضا اصل در اشیاء. این است که موظون بوده بعد مکیل شده در دیاز کتاب آمده. این در دید اسکاتواندرن کاتولیک هم قصدی به اصلی که موجود بده ایده مثل بروزی که اصل در اشیاء مکیل بوده اصل اشیاء در اول مکیل بودن بعد موظون شده این در نوشتای قردیا آمده حالا من بازون اون میخوام بشم شروع که کنید که بینن در قرارداد تو اگر محدود باشه مثلا زمین این مثلا یک هکتار نقدی به یک زمین دیگه به دو هکتار یا نشکال یا چشمی باشه حالا اون گوستن که چشمی باشه این گوستن کمی شاختر کمی لاورتر تبدیگو کنن نقدن یا نشکال ندن ربای نسیع مطلقا حرامه شباه نشه چک رو خوردی کنی این هم از همیزا اون بحث دیگه است. مالی اون چرا اون چک نقدی حساب میشه اونم جزو مکل و موضوع نیست یعنی شادم خود نه یعنی مثلا چک 100 هزار تومن که برگش زده واسمون اونم قابل میشونه این مشکلی داره پس بنابراین خوب دقت هر الان من زاپوزشو از کردم چون در روزه ما این نامه برخورد نمیشه ببینید خب نه واقعا اینم من روی این مسئله کارو اهل سنت چرا رو این بحث میکنن قدمای ما هم در عبارات ما هم بوده این که چرا سنده و فریضه یه مقدار بردها کمتر در عبارات ما بحث شد یه نقاط فندی تاریخی داره که وقتی گه اینشالا در اینجا نیست الانی این که که ما کنه که به ما میان این لایخت بعض و بعضن دفت کنه لایخت و بعض و بعضن دارای یک محکوم و ارفیز اضافه بر اون هم پیغنبر جل فرمودن تا حال اولی خودی متلوسه جرد پیغمبران اول که این مطلب ثابت نیست چرا چون سند و و دیووس ماشاءالله دیگه خوبی داری روایاتی که پیش ما ذکر تو کتاب اون غیر کلان ضعیف هستند درست بودی مسئله اولی درست این دوال لایق سعاده دیفران نوشتهن و توی اهل سنت داری و خیاصند ذکر که داشتیم مسلمه ماجرا بنظرم تو بخاری هم باشه دیووس ما چه کار بکنیم قبول نکنیم بکنیم هنوز سوجاستی گذاشت یه ترکار برای اینکه اون احتمال داره مثلا در اون قصه ببینید که امم حضرت میگه اسم نبره مرده چون شافی است پیش به فهمون رو شافی اون دیگه نگم برای همون که اهل یهودی بود که آیشان یهودیه بشه او صابر نه وقتی خیلی بوده آرشه شروع میکنه اصلا با دست و اشاره میکنیم که این مثلاً این پیغمبر یه اغفت ها اون دفت میکنم با این که این ظاهر که هم رو ظاهر میه احتمالا مراد پیغمبر اکنم در اینجا این باشه احتمالا که همین ذکر رو که اخاق مایت رو همین دیگه که پشت سرش این مطلب رو گفتی ناراحت بشه یعنی این چون آخر امر زاره که قیبت نیست که در زیبات باض مستور باشه که ظاهره این چیزی بیش آب یک یه بعض وقتا اوقیس من که از سری زای ما از این ما نیامده از سری لقب ما می‌تونیم این تیاره نگیم مثلا انتخاب شوری معلوم شده از زیاد داره از کلمات اونام زیاد داره. وقتی ما میگیم کلمه باید نمی شه تو مصادر ما نه علمی نه چیزی وارد نشه وقتی این اشکال که این انسان در ضعیفه درست به نظر ما ضعیفه به نظر هم حتی به اهل هم, هم این انسان قوی نداشته تو ذهن ما اینطوره فعلا در ذهن هم اینطوره مصادر در دیدو دو, دو و سه اهل سنت تفسیری <تصفيق> سنی بر ما همون راه این ساعت به روژه بیرفتنم که اگر سریع بود و مشهور بود بحنه این من رد نکردن امزاد کردن آن روژه چی دیدشون منصوب هست هم. اصلا همین حدیث محمد موسیل، سریع موسیقی صاحبا مشهور بود. هم. خود همین که این من رد نکنن این برای ما حجیده یعنی این من قبول داشتم که این مطرح پس خوب دقت بکن من مخواستم تمام این بحثیت بوداریم از اینجا بخونی تمام حدث این بود که تفسیر ما اینه که قید یک مفهوم عرفی داره و یک اضافه شرعی داره این اضافه شرعی را آقوی قبول نفرمونده هم آیا میشه قبولی کرد اضافه اولا اصلا تره من درسته یا اینه که پیغمبر کن اترون مرزی به اینه اصلا معناش این است که اینم اضافه کرده یا همون مکتوب و اوردیو برام کرده ما رو که اضافه کرده این که همون سنن پیغمبر بود در اینجا اگر این حدیث و رو... از کلام اجزا اهل سنتو میزن قبولم کردن از علمات و زهادشو نرفتن که اگر صفتی رو گفته بود تو این داره ثیبت میکنه حالا ظاهرا داره ثیبت میکنه چهرا تکوولی که شده بعد در اینجا قیمتشو در چی ببینیم صفت که ظاهره تا یه قد ام سلمه دار من این نکات رو ازمشون دید داریم جنبندی یه باشایش به جنبندی نیست یک احتمال داره که ناراهتیه یعنی پیغمبر بی این که اگر ام سلمه این اصفیه دفهمه پشترش این ذکر شده ناراحتی. یک دو احتمال که این سفر سفر که علمیه این که این احتمالش من سه احتمال داره نقطه کراحت صفیه سر خود گفتن اینکه این که این کوتاهه نباشه که گفته احتمالا سر کیفیت که مثلا با دست اشاره کرده با استهزا پس رو بینید زبط که از این جامعه را بازه این که ما در کلمات مرموم اصداد شهرم شیخ هم اشاراتی داره سوال اینه ذکر رو تحقه به ما یا ما یکره رو که با نداره این ما رو چی دور کنیم یعنی ذکرم یک رو این معنی اول که اینجا همه گفتیم ما یعنی یک صفتی که یکره رو هونی صفت که علمی بود همیزن هم و سوتایی در مجتم ناظر دیگه ها ببینید دفع کردیم احتمال سوال ببین ما یکره رو شامل کهریت پس چه سال احتمال شد ذکر رو که اخواد ما یکره رو لو سنه هم احتمال یک مراد از ما خود ذکر یک, این این یک رو این ذکر میگوزی چرا گفتی خوش سن من همه رو میگرم این یکره رو ذکر شد چه آیخوی احتمال آیخوی را دوزن خون دیم درون احتمال دوم دو ما کنایت عیل و نفس باشه یک عیلی یک نفسی نه ذکر احتمال سوم، ما کنایت کیفیت باشه خود دهت یعنی این عیلیشون ظاهرا هم میبینن تو کشت سر چی جوری بگی که از این کیفیت مراحته دهت رو کنم به ما یا ما ده کیفیتی که یکره اون لبسنه مثلا پشتایشی بیماردی مثلا کتا قد ناراضی بیماردی که چون تو عدای من در قدیشت از مزخرم کرد این در این مسائل تا احتمال که تا امتماع میان عادتا هم کتاهای خویی فرمونن وقتی شرک میکنه در این قضا متعبن برایت رو میشه وقتی انسان روایات روی کلا نگاه میکنه و شدن همینطوری که در کتاب و قلطوریم از بعد سنگان هم کرده نه این فتوار رو مضمونه یعنی بعضی اعمال رو بعید نیست که با تعمال در این همه شکلتی که در باب شریع در باب غیبت شده بعید نیست در نصف این جوجه هایی ما احتیاط رو کنیم در این یه جمع بکنیم اگر احتیاط بخوایم بکنیم نتیجه که این هر سه نصدار غیبت هم اید که یک رو هم خود هم اون کیفیتی که احوالو سماع، کیفیت بولی شگفت انگیز، تعلیق داره، حمیدا بود. نه، ببینید مثلا میگه این خانم که کوتاهپوشیمون، یه دفعه ندسه اون با ادا اون رو در میره رفتن، شگفت. نه، میدونن، نه کیفیت بیانش. یه کیفیتی بی مطلب رو بیان کرد که اگر اون مثلا میگه این خانم کوتاهه، اینطور ناراحت نمیشه. هم با این کیفیت ناراحت شو. پیغمبر گفتن اندوی عایشه گفتن ارتاب تا این صدق اگه اندواده قبول بکنه سر رهیبت بودن این عمل چیه اون اب که ظاهر بودو مثلا کی ظاهر بوده ولی معنی چه ای قصه قبره یکی بوده کی مثلا یکی ولندی یه ای خاصی نمیده کی این چی بوده که پیغمبر گفتن ارتاب تا یکیش احتمال داره بخاطر زد ذکر میقاطر کیفیات نه به خاطر نص اینش خیلی بعیده هر سوالی و ظاهر رو من الکول اما مورد ذکر رو فل انت مقام انتقاد ثابت نشد مقام انتقاد ثابت نشد و مورد بالموسول نه سل نه سل دیگه از اون سه احتمال ما شیخ احتمال لسات رو گفت مسیر احتمال دیگه ز خود نفس سلیه دیگه بدون شیخ و مورد بالموصول از سرم بزرگان تایی ذرافت در کلماتشون هست نفس و نفسندهی ها بکنید و اگر هم شکل بکنید که آیا از این سفر احتمال کدوم طبق با حالی همون که من اونستاد فرمدن برای از جایده میشه مگه قضا مطیعتم وقتی جوابیشان وقتی مجموعی روادگی و که عدد شیلی فرابان تایی هم مثلایی من میگیم. شاید مثلا بگید مناسب این بودهی ای هم که ا ترمی کدن به هیچ نهر این مسائل رو نشنن این بیشتر ناظر بینیم بوده که احتمال میدونن که هر سه نهرش داخل دیبست باشه هم جایی که یک رخوز زک هم یک رخوز عید هم یک راه رخوز کیفیه تا زک روشنجو بگیم به خاطر این همه تحقیداتی دیگه در مجموع ارواز آماده هر سه طبط قاعدی و اصولی برای عزلی فهمانده این رو بسته اما این طبط قاعده سانوییست که وقتی مجموعه ی عزله رو نگاه میکنید و تحکیدی که عزلی زیادی از مزرگان داشت و بعد جهاز و هر حال هر کدوم از این ستا واقعا یک به اصلا نفسی در شخصیت معنوی انسانه ذکر یک که یک رحول و سنحالقه یا کیفریت نمیدون یا به استادانه، جا به من شخصیتی حفیظ شهادتی یا جا به آب یک نوع حفیظ شهادتی است. اگر این شهادت انسان یه خلاقیتی گردد که یاد که یه جلس سر نه ویات را رو، الله انسان یک خلاقیتی گرام ملازم کنه. یعنی در اون میارهاي اصلی هست احساس میکنیم در نقطه های اصلی در باب غیبت کی نکنه. لگ بدن که خلاقی از گفتن، این مطلب نارهنده ها چرا میگی؟ وقتی نارهنده که تو میگی؟ ولو نفس بینه از که برمس هم اون قصه آیش اگر راسته شد خود این خود ذکرم هم میزن علایه حاله من مراد به محصول در عبارتیشان قبول نکردیم انصافاً لاعبار احتیاطش اینه که هر سر رو بگیر شامل میشه و ایشون کمی گیر دارن میشه، و ظاهر اینکراره عبارت عبارتی چرا حث وجودی اینه که آخویا که این مراد نیست نظرشون به عبارت شیخ بوده شیخ نه چراث عبارف... وجود نه یک و اون لو صنع عبارت هم اگر باشه مراد همینه ما یکرا من العیوب مراد اینه بله. و بعد چرا و هم طرز مراد ما چرا حث وجودی و نون یکرا وجوده کلمه در قبائل و, ما شراحت و ای این ما چرا حفظ ذکر میگه بذالک الای این مطلب دهمی جوهر شخص نمیخواد تو خود ذکر کجاست باشه انصافا احتمالا اراده کرده واژن پیغمبر این معنا هست حالا و انصافا تاکیداتی در بابه بیبحث شده مشاعد دیگه علاوه بر تعریف دلالت جوحتش در اخبار این همون نکته است که ممنون استاد مخالفه مثل قول ای در قصه علب و عبو زمان الغیبه از کردین مفصلی به نام وسیعت و نبیل عویزه که این ثابت نیست بله و فی نبری این آخر قال اتدرون مل غیبه این در کشوری روی مرون شعر سانی آباده که از سر وحث سندر گیرسه شده و نزا قال ذکر احاق مایتنی از سر در سرین مسلم نام خلاصه بحث, بحث روی مطالبی که گفتی بود کلماتی شد دیگه تفریق نهایی بکنی این رویاری ها تو کلن استاد قبول نفهموندن به خاطر زعب سانت بیش ما تو ذکره که اقام بودا که در مساده را آمنه به سنده صحیح هست و در فتابای اصحاب ما هست این صاحب اجمالا در فتابای اصحاب ما در کتابون ترخیر تلقیه را قبول شده بگه هم نیسته صاحبایی شباید این زمان داره ضا حال که جامل مغاط حیق تلجیی و ال معفل اخبارن تبول فی اخید ما یکره او به فی اینی ایشون جامل هم که اینیکیشون جا مغاست همز حی جییتی این هم به نظر ما است. یعنی ت تصور ما حیقت یبت هم در تقصیر برتونان بود سه سال جوهی یا ع محود شده عیر عوبگه یا ی او به ما ی محول سن ولی مراد به مایفره هم مایفره زهوره ظهور سواه هم کرنه هم جزا هم کلبره و جزام جزا املا کلمیله و قبایه بحث برس و جزام محره که اون جزء افعال نیستن یه روایت داره که در اینها هم بحث ظاهر و باسه نشمه هم روز هم سیابه اگر مثلا اون برس اون ظاهره مثلا تو صورتشه پیسیه صورت این غیبت نیست اما اگه در اون ک ارز کردیمون رو با ترد رحمه سیابه سادست مشکل داشت اون مطمئن ظاهرش برشند نشد بله و یه در امیارات به مصور نفصل کلام در ویدیوز پر و شخص رو به کلامی شیل درسته نیست که من همه حرف کردن و پیم تا احتمال ما کنایه از یک باشه کنایه از نفصل باشه کنایه از کیفیت باشه و یکونو کراحت و المالکون اظهارندر اه این مالک اون یه سوال در ان اگر مراد شیخ از این سومی باشه با ما یکی میشه گویی هوط خود ماکس نمیخواد چیزی بفرنه گویی میخواد از این رز روشه گویی هر طرف با این شرایط قبول میکنه اول باشه خلاف <تصفيق> ابن عراقی مشکل مو در ابن عربی این بود که قابه رو به این معنابی قابه یک کور انسان به خیلی نوشند این معنی قابه باشه روشند نشد یک کور انسان نشد اینش روشند نشد یعنی روشن نشد به این معنی که ثابت نمیشه عربی این اقضار نبتونی نه لبیت کنه اقضا نمایت و هزهار او لکن اقضا و این مالکم یه مشهر به زم نم یخصود متکلم از زم نده که هلقاب مشهره به زم مثلا بشه که از آقای هر طرح داره اما به این لحظ خصوص مثلا قفلشون زم باشه حاضر نیست کفته بشه در لضایشون عبارت سه ها ها بوده سه ها لقفتانی عرضی بسو انگلت کلمه خلف انسان مصدور نه او اینجا او نیوازه غلط نرکده هاشون نمیشه او به ما یک این بعد نکته این خلف انسان محسوب معنای ارثیه، دمایی هم مورد انسانه، معنایی شریعیه. و دو ته میگردم کی میکنی؟ ولی دل حدیث رو نداری. اینجا لو نداره، او نداره. نداره. که در خود سنه. به در کتاب لسان رساله هر نگاه به بنظر اول داره. اما کتاب رساله به معنی به واقعا مولود است. رساله روایت است. ما که رساله ما استاموجنا ها او دارد. به نظر ای اینکه این معنا به نظر من دقیق در است